گگرانی عزیز و خوشا ویست سلطنت بیت 65 خردنویک تیبی چشت میجوری حجری مکرانی حاتین ولاتن فرمون لگلمان بن هجاری مکریانی به بسرحت جیانی خویده، جیانی سردمی شخ و شرشمن بوده گیرتو داله، هشته هزار جاشو سرباز به تیربه رو طفنگ دست ریجان دکرد، همو چک داری پیش مرگلو به حال دگیشت پینچ سات کست، اگر برانو جنگل سوتانو دو کل داوستن، روژی حشر دینه بیانی یک یک بگرمی احوالی پرسیم نم ناسی و تی ملاحظه برزنیم چوار راش بو نم دی بو لدوکالی ل تونی انده و زرد و رشالگرابو که نم ناسی اوا نان زور کم بو راج دو نانی زور چکوالی تن کسی تیر نیکرد لبرسان هیزی اجنو شلده بو اوی جوگه زور گرمو گران بو نانی وشکمن بو آوا دخورد پیش مرگه پتر لحزار سرمر جاشو دولت بیا خوا تنظیم و ریکوپیکی لدا بشکردند نه بو بڅو ورځې بو هشت کس حیوان هبو نقاپ و منجلیک نه جګي حلګرتنیک د بوای یک جم او هشت کس لاشه یک بخون شیش لدر بتشنو لسر پولوان بیبرجن شیش حلګرتاه لګرمن بوګندبو لجم یک اوندین گوشت برجا و دخوارد زور نخوشکوتن نه خوشکوتن تا څوار ورځې ترو جم کیتر او دا سپید کرایوا دمغوت برا اگر منجلو قاپی فافون هبا اگر روزی بس 22 کس حیوان یکتان همو جمن همویان گوشت ان خورد دیان انکر قاورما سرو پی جمع یک زیادی بلن بده خو نه مام علی عجماکی خومان منجلو که کی, کی پی بو تا یک حسن دی بو نیوا دو یان سه جم پی خور منحبه روز یک قدوی کونه حرسم هنده بز و چوری خورد بو حالیت یک هیقی دهات یو دینالند. تا دینالند ملاباقی دی گود سک داییک. که خود نبو. که خود بو. چای و شکمان پی بو. شکر و قند نبو. چای به شکر من دخوارده و فیری بو بوین. روز یک پیوی که زور پای برز که امرلی و وابزانم زنم دبیتا سپه بودی ایران بو. بناوی عبدالرحمن قاضی. دگل بارزانیک یک وتی و تی قربان. ملا مصطفی فرموی به حجر بلین عبد الرحمن به میوانی اوبه قدری بغد من شوتم ای سر چوان پتو کی سربازی تنکه محبوب بوم راخست وتم مام علی چایلنی قروشکا چای کان لپیش دانا هر تماشا یې کرد دیر بو وای بو چوبو ک شکر تیکراو لیک دراوه فرکی له خورداو تفیکر دوا وتی او کو شکر ویتمان ببخشنی مان هر یم شهر وای د خوینه و وتی لايبن ناخمو یمشوتمان نتی به فرمی قدری انگرتم لوازیاتر دس نارو روزی دعای کل قندی که اون بوهی نین همهی بدلوپا زرد بودو یهند بهبالم رش حال گرابو مام علی رشته با کل کو قنشکیانی طالنی پیریخال همهی وا ورد کرد اینکی زرربینی دوست لیکن جکاتو زور به حوصله و دندا دنها عدلانه بشی کردو هر کس بشی خویی بخاطر گرفانی حذدکا به جمعی ک خلاص کا حذیج دکا سرم زره ته بو مستفاو کاووتیان به خو سینه بود به تعشین به خاطرش ریشکوت نسرم بچوار جبریندارین کرد وتم یوال سر من خوتن فیر کن. جابروانن من چون سرتا شکی کارام خیلی در درنکه پتر ل دجم لسری هر دوکان د خوینه نو تولم لیکردنه و برو چشټه ان یک برو زیه دا ګرم جنان دریونه نکرد. کرد هر کتیاره پیدا دبو هرین لیدا کردن تیاره کورهات مات دابون تیار دروښټ د سټیان پیډه کړدوه د نزی گوندي زورګوان جنګ لبنداریک مشکې دژند وتم خوشکامن تو سرپیت ناوي وتی ایب قربان چونم ناوي وتم کسی ترش هاوسات هيا وتی جنیاخه بچوار زار وکوه وتم سبي زورا چند دېته به به وامل سرې قتم وتی ادي کاکا تو دوت ناوي وتم اگر هبه وتی هيو پیواز شین شې دمکه یک دو دست که ترپیواز یکم دگل خوه نایوه لوکاته ده هجده کسکه بو بوینه که او مصطفى و ممعلی نوی که گورکو من لبندر چنار یکی دمروبار کی بچوک بوین دمکه دو با درده سرد ببیو ترپیواز بکه بابولو بکه بابولو ترپیواز بکه بابولو با پادشا بلیه هتیوه اوار اصر یک برزانی با پاریزران یوه بو برمانده هد و تم که که نانو تره پیواز بدوی سرد، فرموی، حجر تول من ساستری، من نانو او دخوام با کابرای سلاخی حیوانانم سپرد، کلباتی اوی سروپیو پیست فریب دا لسر یکیان کوکاتو بوامن جنکه هد، پیوازو دوی هینا، حتی کولی گرتی سروپیو پیستی بردوا، ایتر پیوازو دو من مشابو، اوار یک برزانی بنگی کردم هجر بابچین قدم لیدانک، بنادال اکی زور وشکاروی، زور لیرواری چوغورده رویشتین، توشی در بروی اکی زور استور بوین. میشنگوین لقدی دا حیلانه بو، دیر بو کلورایی در زور پرلمیشو هنگیونه، حیلی پلنگ دهد. پاسوانکانی ملا مصطفا و والو روازه بی کجین، برزانی فرموی، نه، بابا جگه تا نزانن، لدولکان سرکوتینو لبیدار نقل یکم بو ملا مصطفى دو تیاری حکر هونتری سقباب گزوگومت پیدا بونو بی سلام و کلم بر تیر باریان دین فرموی دانیشن هرسکان دانیشتن فرموی هجارتوش دانیشه ماد با منیش وتم تا خود دانانیشی دانانیشم فرموی دلم دانیشه وتم بقصد ناکم تیاره اوسر و امسر یان کردو چوار جاریان لیه پر جاندی نو کوتینره هرس هستان دی هجر نقلکه تاو و تم قربان لترسن لبیر نما فرموی درو اما که نترساوی دنا داده نشتی دبه تاوی که لسر بردگ نشتی فرموی تو استه عرزود لدنیا دا چیه و تم عرزون اوه تیاره لیم نقرمینی و لپنا سماور دو چای به استیکانی شوشه بخوماو برزانی فرموی تیاره به دست منیه من بلان اواتی چای سماورت استه هرچوانیه با دینم حکایتی قدم لیتنا کمبو ها ولن مام علي باعزي دي جورك كمردوش شير ناتبو وتي بابشينا زگ هنجونا ك منيش وتم مامي جن دولاي كوش كرايا پلانگيليا من نايران بشم اگر تو بتني عشي نشاندم ايش وتي با خولاي خوش بو به هنجون هندك ميشك من بهت اعتو سرخو بلامزحمتا روژانه د چومه نزیق زیګورا لسربړ زیګدانشتم جمله دنګي هاويشتني توپ 55 دګر کلاودیویچای پیر د دیانتقان 18 ثانیه به هوا ده اوږې ده جریک نبه نمدی و کناری لايبليب کوي هر دکوتنه ناو چموا روز یک بناو دروانده برو چوم روښتم کملبکم دروکان زور برزو ټیکس مراوبون بازور زحمت خوم ګاینده پولا سپین دره برواله تری کم اوبو ويستم بناويا رد ببم هرچوماناو روچوم خوم بزوان تا اجنو چوم خوار ديسان لترسي جاني خوم تکانيكم دا خوم تالاي سروي استوراي رانم روچو نخير جان هات سر ليوان استا غورم غوم دبه وق پلاقاجي ملي سر براو تکانيكي زور با توجمم دا نمامه که با قد دست ک پمرم و بردست حد خوم گیرته و کش کرد تو انیم 15 دقیقه یک لزل کاو در به مو بری پیشوم ک پر لدرکی بلندو ناراحت بو خوم بنو در خزن لا دستو دموچاوم و د گئی مسر لیواری چم لا کوشش تاک لا و قربو لیته قرمو خوم و با به اویزه شتم نو هلم خستن ملیک کرد ه تجلو کوش کسر بونوا زوری پیشوم لبرسان حالم نم، شنی که هستن ترم ل نو در بدی کردو هر چون یک بو درشم توشی بیستن کاتم و نو کاتم تالکی کمی کرد و قصد قرد چونه آوا تا کل کانیم خورد کبرای کمی پیدا بو هرا ای او چیه کی استاد دب مکن ملا مستافا ای او کرد وتم برای زور برسم. نا نکم ده او دم بمبلای برزانی یان خود لیره بمکوشا کابرا خوابو و نا نکی بوهنم با یک حلپا خواردم او جا پیموید دفرمو من آمادم چون دوی بوابی ویدی نا نا برو اخوات دگل زور جهر گتو ما بروای توا و موابو، هر هرکسی که زور بغیرتیش، هر درندهی که وکشیر و پلنگیش، هرگا هست با خطری مرگ دکا جوریک ترست جا با زور کمیش بی دایدگری. که لبران مردن دا هیچ نبی کمیک کمی تک نچه. خوال همو آفریدیگ دا کمیا زور ترسیکی داناوا. بلا ملائکی ترز بدست ملا مصطفی لبیرچوا. ترز بلای او دان بو لو تاغي چی دیوخانی بغدا ل نو دوستو آشنایاندا چن غوگشو خاطر جنبو لجنگی جنگی ګللو باراندا هر او پیوابو نرنګی د ګورا نقسې تکل دبون نوې د زانی میش کیشی ل دورې بهوی بخیوکرانی ل کوملګش شیخانی بارزنده ل خدا د ترسا لا ابرو نمانو ناظران د بلان ترز ل مرګو هرگیز هر اوم دید به مردن بی ازایتی و نترسانکی که لو همو سالانه و لو همو شرانه که کرده که افسانه که خیالی لیهات بو که او ما بینه لنزیک و دا بوم بروام هینا که هشتا کس نی توانی و کسیش نتوانی ازایتی و نترسانی مصطفى برزانی و که یا ده ای پی پی بری و بزانی باسیب که روش یک لجنگه او شرانه بینی دلاش اگر بر تقو گرمش و آسمانی کرد اگر پوشو دارن هردهاتو نزیگده بود ملا مصطفی پالی ببرده که و دابو سیغاری دکیشه روی کرده بود من حکایت راوبرازی که در راو که سال دقل شیخ احمد ابرایده توشی راوبراز هاتون زور به وردیو همینی باسی همو وردکاری که او راوی دکرد چند کسی کش لحرسکانی لدور راوستا زورار زورر ناویک به ناس برکو شیواوی ه از بانی جاش گیشت نگوندی صفته و آگریان تی برده. فرموی حجار سوار آغا لو راوده لهمو من چیتر بو. غیزه گلیک هر دو بست بلندتر لسری ملا مصطفى و بردکه کوتو گلکان داورین نومن. من. ملا مصطفى بردوان بو. فرموی جا سوار وتم قربان تم پربن. سوار چی راو برازی چی؟ بو من لترسان یوم لقسان دبه استا آگر مندگاتی. فرموی سوار آقا گوتی را و براز زانی نیده وی کی حراز بدنگی که لرزوک و کدیار بو زور لو اترسا ملا مصطفى لرزنگ دا بکجره وی ازبانی خبری حجار لرلاکوی باشا برزانی فرموی سوار آقا لدو آو براز یکی کشت باو کاری حسین حمد مرگسوری به و پشو سواری هدو از غلام صفته سوتا جاشدین ایره صفته هزار میتر من لیدور نبو ملام مصطفی فرموی هر نه یعنی بوپچن بچن بله گوتلیه منی جوتم نخیر نه ولا ملام مصطفی بر دوام بوله سر جران دی فرمو سوراغه یک یکی, یکی ل و دکشت پیشو نه اندزنی ک به توندی برون با ورکه اگر ل هر چوالا ولا معبو 20 میتری نه ماوب تینی دهات سرو چاون او پیاو دد گوت ل دی وخانی پالی بدستنیو نه ودو چاونو و قندر خاو قناه تکرایوبوبینن لچیروکی راوکواز نه نه نو لجگی خوې نرکی نه کرد خو راستان استابه د منګود همدا دی غیبی اگر دا مردو نه منګیشته خبر هات وتیان جاشمن لسفته حلقندنو کلاکین با کمال لودشته کوتوا اوتوا لو, لو روجندا کیف کیفی منبو لوتا بارزانی لروسیا و ګراب همیشه د وروبري جمیدهات نشو نه روز قط نه بو 100 200 بن با اواتو بوم جاریک بود دا دقیقاش با تنیا یا دا گل سی چور کزده لئی بم دستی نیده دا لاملو رو جانده کچک در لشرین و خلکی تریشکاری اداری و پرتی بازی و حیث نبه حیث نبه خواتی حلقورتنده نو خوخوین شیرین کردنی منافقانه نما بود کس للاو ندهات لای هر لفین کی اوارو و رادیوم دبردو اخبارم بوده کرده و قسې قورم د کيردو زوري كيف پېدहात احمد توفيق کاوال لسټ شي پيرس لشر دابش دربون بازني تعريف از اياتي هر دوکاني د کړد روژیک لنويج شيواني دا ک تازه سيره هلد جيره او ګرمو ناله ټاپن هردا فرموي هجر همو بلکي د رنج سوتاوه او همو دوجمنمن لسره لواني کس در نشي هرچند بوخم چنجر او فکرم بدل داته بوتم تکه شتيوه ما فرمو. فرمانده نه به باسشکاني به د ثامن بروام وایه بو حاله شو لو واش خرات رده به بو حاله شو لو واش خرات ربه هر خوما سر دکوین فرموی لات وایه د ترسم و تمنا منك کر ملایکم بوکم چکی هر بکاری گوچانوسی باگو نترسم زانم توکهه متمنند له میدان شر در راو نه ترسی بلام نام وشتکه بفرموی که دلی دل زائفانی پی بترسی ترسی فرموی لم گالیو نوالانی بارزنده هر بر دکو هر پنچیک یک یاد پهلوانانی شهید پیرازګاری حق شرعی خو ینم و هیچ حنگا نانیم نانم کمروی کی ازای ایمیل نه کوجرابه ایستاش کوجرانم بلا نیه که قابیلی بیر لیکردن بی. جیان هر دبره تو خدا وقت تو اوتید جارش سردکوین. اینو پیشمرگی ولاتی سوران هرکس قلمی که بگرفه نوابا نایی ماموستای دا گرتوا. لبنانی شیطیه پارنده بو که به همون مسافر دالن استاد. ماموستای ساده قدری نما بو. روش یک لبارزن نامی که بو بارزانی حتی بو دمخونده و ایک یک نوسی بوی بچوکتن ماموستا روکن جلال. رکن رو یعنی استاد. دیار بو افسری استاد فرقی دګل افسری د کهیا و اېمل بارزان قتیسمایونو بو هزار زیل جاشو اسکرو ټوپو تیارې د نړۍ دراوینو شرکر من ل 500 تنه نان و کم حالواشر خبرو باسی جپکان لایسورن و تکرکوکو سلیمانیو حوالر لروجی نوې مانگی جون نوې 6963 کهرش بو سر سپیلک دستي فکر دولت بهس فرمان کورد قرانی ل کرکوکو سلیمانی لنزیک شار سلمانی شیوی که نو نابو شیوی مرگ دوست و کوردی لوی کردی لو شیوی دا اعدام کرابون و دا چال خرابون لکرکوک چند گررک کردانیان و بر بل دو دو خاپوریان کردو نه هشت کس تیتولک بریت در به هزاران مال کرد آواره چولان کران آواره چولان کران خبرهات کسی... کسی کس لو گیراوانی زمانی قاسم کلسر هرای کرکو گیرا اعدام کرابون در ملحیدر یک لوانه بو، اوی زور داخی بدل موانه اعدام شیخ مارف ورزنجی و شیخ حسین برای بو کبراستی كبرا... زورم خوش دویستن، ایتر لو ترسول ارزده هرچی توانی هلیو چک بکار بینه دیانه چیا، لشکری پیش مرگا، لاستان سولیمانی و کرکوکو هولیر بونا چنقات، گگرانی عزیز و خوشویز، لیر دابم شویه حتی نا کوتای بشی 65 جی خوند نوی کتیبی چشتی مجاوری هجاری مکریانی. تا شویه کترو لبشی گیتر دا پیتان دگی نوا شوطن آرام و شادو و بختوار بن.